به نام خدای یگانه مهربان سلام زبان افسانه ها زبان مردم کوچو و بازاره زبانی ساده و روایتی پر رمز و راز و سرشار از حکمت و اندرز افسانه های شیرین ایرانی گنجینه ای ارزشمند از فرهنگ شفاهی کشورمونه که حفظ و سبت و ضبط اونها امری ضروریه در برمی هزار افسان افثانه شیرین چه برسر سر که پادشاه اومد رو براتون نقل میکنم این افسانه برگرفته از کتاب افثانه های ایرانی گردآوری الپ الولساتون ترجمه علی جواهر کلامه امروز علیقلی دلغک پادشاه برای یه دست لباس به خونه رفت و سفارش لباس داد زن خیات باشی که از دیدن علیقلی دلقک پادشاه خیلی خوشحال شده بود شوهرش رو به کنار کشید و گفت میبینی امروز شانس به تو رو آورده مرد که همون خیات باشی باشه پرسید چه شانسی؟ زن گفت مگه علیقلی دلقک پادشاه رو نشناختی مرد سرحی تکون داد گفت چرا اونو شناختم زن خودش رو به شوهرش نزدیکتر کرد و گفت پس معطل چی هستی مرد با تعجب پرسید آخه من باید چیکار کنم زن گفت این شانس بزرگیه که دلقک پادشاه برای تهیه لباس به سراق خیادخونهٔ کوچیک ما اومده میفهمی مرد چیزی نگفت و زن ادامه داد و گفت الان الان بهترین فرصتی که از اون دعوت کنی فردا شب برای صرف شام به خونه ما بیاد. مرد گفت ولی من میدونم اون فرصت این کارا رو نداره و زن حرف شوهرش رو قطع کرد و گفت نه نه یار سود باش برو و ازش خواهش کن فردا برای شام بیاد خونه ما سود باش مرد خیاط که تاکید و اصرار زنش رو برای دعوت علی دید با خوشحالی نزد علی برگشت و گفت ما خیلی خوشحالیم که شما به خیاط خونه ما تشریف آوردین باور کنین من و همسرم همیشه آرزو داشتیم از نزدیک شما رو ببینیم و از مصاحبت با شما لذت ببریم علی چیزی نگفت و فقط با لبخن سر تکون داد و به پارچه ها و لباسهایی که از گوش و کنار خیاتونه آویزون بود نگاه می کرد مرد خیاط با خوشحالی گفت جناب علی من خان من, من میخواستم از شما خواهش کنم فردا شب بله فردا شب به خونه ما تشریف بیارید و شام رو علی به تندی کلام مرد خیات رو قطع کرد و گفت چی؟ بیام خونه شما؟ و قبل از اینکه از مرد خیاط پاسخی بشنوه ادامه داد نه نه نه نه نه این کار غیر ممکنه من خیلی گرفتارم کار دارم نمیشه مرد خیاط به علی نزدیکتر نزیده شده گفت باور کنین زنم از من قول گرفته تا شما رو راضی کنم فرد شب برای صرف شام به خونه ما تشریف بیارین اون از الان رفته و تدارک شام فرد شب رو میبینه خب حالا چی میگین؟ دعوت ما رو علی غلی سکوت کرد و خیاط باشی قدر اسرار و خواهش کرد تا بالاخره علی غلی دلغک شاه پذیرفت که فرد شب به خونه اونا بره مرد خیاط با خوشحالی اندازه های علی غلی رو گرفت و به اون گفت تا فرد شب حتما لباس اونا آماده می و علی غلی با بیهوسلگی از خیاد بیرون علی دلغک فردا نزدیکی های غروب سراغ مرد خیاط رفت و مرد خیاط که منتظر علیقلی بود با دیدن اون گل از گل شکفت و با احترام زیاد اونو به خونش برد چند دقیقهی که گذشت صحبت و اختلاعات ها شروع شد و یک ساعت بعد هم زن خیاد باشی صفری شام رو پنگ کرد و یه شام مفصل و حسابی برای شوهرش و علیقلی غلی دلغک ها بود همینطور که همه مشغول خوردن بودن، زن به شوهرش اشارهی کرد و مرد بلا فاصله لغمه چرب و لذیذ گوشتی درست کرد و با اصرار گذاشت توی دهن علیقالی. علیقالی که در حال حرف زدن بود، لغمه رو فرو داد اما لغمه توی گلوش گیر کرد و رنگش کبود شد و بی دراز به دراز روی زمین افتاد. خیاد باشی و زنش که حال و روز علیقالی دلغک رو دیدن با دستباچگی و ترس به این طرف و اون طرف و اتاق میرفتن و نزدیک بود از ترس زهر ترک بشن. زن با صدای لرزان به شوهرش گفت وای وای وای تیتی که خاکی به سرم شد مرد تیتی آخه مگه اون خودش دست نداشت لغمه بگیره که تو لغمه رو گذاشتی توی دهنش ها؟ مرد که از ترس رنگش مثل گچ سفید شده بود با عصبانیت گفت حرف مفت نزن زن مگه تو خودت اشاره نکردی که ازش پذیرایی کنم ها؟ زن بتوندی گفت من گفتم ازش پذیرایی کن نگفتم لغ رو بزار تو دهنش خفش کن و بعد توی سر خودش زده گفت وای وای اگه پادشاپ بفهمه کش توی خونه ما مرده اون وقت وای وای وای خدا به دادمون برسه خیاط باشی که تحمل قرض‌ذنهای زنش رو نداشت برای پایان دادن به این بگو به بتوندی گفت باشه قبول تقصیر من بود الان چیکار باید بکنیم چجوری از شر جسدش راحت بشیم زن با صدای آهسته گفت الان شبه و هوا تاریکه بهتره جسد علیقالی رو برداریم و بندازیم توی کوچه اینجوری کسی نمیفهمه چه بلایی سرش اومده مرد گفت نه این کار درستی نیست من یه فکر دیگه دارم زن پرسید چه فکری؟ مرد گفت حکیم یعقوب همسایه که دیوار به دیوار ماست من میرم در میزنم و میگم مریض آوردم تا حکیم یعقوب از اندرونی بیاد تو حیات اون وقت علی رو میندازیم توی دالون و فرار میکنیم و بعد رو کرد به زنش و گفت خب چطوره؟ زن با خوشحالی گفت این بهترین راهه فکر خیلی خوبیه و چند لحظه بعد مرد علی قلی رو به سختی بلند کرد و گذاشت روی دوشش و به همراه زنش به طرف خونه حکیم یعقوب به راه روی کوچه پرنده پر نمیزد و سیاهی شب همه جا رو دربر گرفته بود مرد در حالی که از حمله هیکل قلی نفسش به شماره افتاده بود به زنش اشاره کرد که در خونه حکیم یعقوب رو بزنه زن آروم جلو رفت و با احتیاط در خونه حکیم یعقوب رو زد نوکر حکیم یعقوب از توی حیات گفت کیه اومدم؟ خیاد باشی از پشت در گفت مریض آوردیم، زود باش حکیم رو خبر کن صدای نوکر از پشت در به گوش رسید که گفت باشه الان خبرش میکنم خیاد باشیم فورا جسد علی علیهالی رو دمی در خونه حکیم یعقوب گذاشت و به اتفاق زنش از اونجا دور شده حکیم یعقوب کورمال کورمال توی تاریکی اومد توی دالون و پاش خورد به تنهی علیقلی و علیقلی دنبی افتاد روی زمین حکیم هر آسان به نوکرش گفت چی بودین چراغ رو بیار زود باش همین که چراغ رو آوردن دیدن ای وای دلغه که پادشاه روی زمین افتاده حکیم که سخت ترسیده بود با دست گفت وای وای وای, وای حالا چیکار باید بکنیم نوکر گفت حکیم تو اونو کشتی حالا جواب پادشاه رو چی میدی حکیم یعقوب با ناراحتی گفت ببرون صدا تو من که نمیدونستم اون توی طریقی نشسته نوکر با دست پاچگی گفت حالا میخوای چیکار کنی؟ اگه پادشاه بفهمه که دنگکش با ضربه پای تو مرده بای معلوم نیست چه بلایی به سرت میاره حکیم یعقوب ای به پای نوکری زد و گفت بسکن دیگه من که عمدن اونو نکشتم خودت که شاهد بودی نوکر گفت خدا بهت رحم کنه حکیم حکیم مکسی کرد و گفت آه یه فکری پشت خونه ما خونه صدر ازمه آشپزخونه خونه امارت اونها به پشت بوم ما وصله الان جسد دلغک علی غولی رو بر میداریم و میبریم بالای پشت بوم و اونو از سراخ دودکش میندازیم پایین. نوکر پرسید بعد چی؟ حکیم یعقوب گفت بعد دیگه کار تمومه حکیم یعقوب و نوکرش با هم علی غولی رو برداشتن و انداختن توی دودکش اجاقه یقوب نوکرش جسد علیقالی قلی که پادشا رو انداختن توی دودکش آشپزخونه خونه صدر اعظم از خوشفختی اجاق روشن نبود آشپز شام رو داده بود و اجاق رو خاموش کرده بود قلی صاف و سیخ توی اجاق موند آشپز باشه که دید دیگه کاری نداره این طرف و اون طرف رو نگاه کرد که مبادا گربه توی آشپزخونه مونده باشه و میخواست در آشپزخونه رو ببنده و بیرون بره که یه دفعه چشش افتاد به دو پای آدم که توی اجاق سیخ مونده. آشپس با صدای لرزان گفت تو تو تو, تو،, تو،, تو هستی اینجا چیکار داری بیا بیرون زود باش تو تو, تو کی؟ علی کی جوابی نداد آشپس باشی که فکر میکرد کسی برای دزدی وارد آشپزخونه خونه شده فورا سنگی برداشت و محکم زد به تنهٔ قلی و علیقلی دانبی افتاد روی زمین آشوز باشی چراغ رو برد نزدیکتر و دید بله دلغک پادشاه افتاد و مرده آشوز باشی بیچاره به گوشه پناه برد و در حالی که زیر لب خودش رو به خاطر کشتن دروغی پادشاه لعنت میکرد به فکر چاره افتاد و بالاخره تصمیم گرفت جسد علی غالی رو برداره و به دم دکون صرافی ببره چند لحظه بعد باشی در حالی که هیکل علی غالی رو روی دوشش گرفته بود توی تاریکی شب گم شد از باشی جسد علیقلی رو جلوی دکون صرافی راست نگه داشت و دستش رو به قفل دکون بند کرد و خودش هم با قدمهای شتابان از اونجا دور شد یک ساعت بعد داروقه با چراغ و فانوس اومد و دید که یه نفر دو دستی قفل در دکون صرافی رو چسبیده داروقه داد زد اینجا چه میکنی علیقلی جوابی نداد داروغم بدون معطلی با گرزی که در دست داشت محکم زد به کمر علی قلی و علی قلی نقش زمین شد. داروغ جلو رفت و خوب نگاه کرد دید که ای داد و بیداد. این دلغت پادشاه پادشاست که کشته شده. داروغ آه و ناله می کرد و داد می زد. خاک بر سرم شد نفهمیدم دلغه پادشاه رو کشتم وای خدایا! حالا پوست از سرم میکنن همون موقع گشتی اومدن و دیدن چه خبره فردا صبح خبر به گوش پادشاه رسید که چه نشستی داروغه دلغه تو رو با ضربه گرز کشته پادشاه هم غضبناک شد و دستور داد داروغه رو توی میدون بزرگ شهر Don't. صدای اون روز جارچیا توی شهر رافتند را و جار زدند که آها این مردم شهر به حکم پادشاه داروغه که دلغک پادشاه را کشته در میدان بزرگ شهر به دار کشیده خواهد شد. آشپزوشی صدر اعظم که صدای جارچیا رو شنید به خودش گفت عجب من دلغک پادشاه را گشتم بیچاره داروغه که تقصیری نداره و دلش برای داروغ سوخت و فوری رفت پای چوبه دارو به جلاد گفت داروغه رو دار نزنین من من که پادشاه رو کشتم پادشاه آشپز رو اذار کرد و ازش پرسید مردک بیرم چرا دلقک منو من کشتی؟ مگه اون چه بدی در حق به تو کرده بود ها؟ آشپز باشی گفت قبله آلم به سلامت باد اون هیچ بدی به من نکرده بود شب پیش اومده بود توی آشپزخونه ما و من من به که دزده سنگ بهش که یه دفعه افتاد و مرد همین پادشاه با خشم گفت همین تو دلغه که خوش سخن منو به راحتی کشتی و اون وقت میگی همین و بعد با عصبانیت دستور داد که آشپزباشی رو به جای داروقه دار بزنه این خبر به گوش حکیم یعقوب رسید که بله آشپز باشی رو به خاطر قتل دلقک پادشاه قرار به دار بیاویزن. حکیم یعقوب دلش طاقت نیاورد نزد پادشاه رفت و با ناراحتی گفت باه با کردم من این من بودم که توی تاریکی متوجه دلغک شما نشدم و اونو بال لگت کشتم. حالا حالا هم اومدم تا تغاص پس بدم. پادشاه گفت بسیار خوب آشپس رو آزاد کنید و این مردک نامسلمون رو دار بزنید خیاد باشی که خبردار شد حکیم یعقوب قرار به عنوان قاتل دلغک پادشاه به دارا بیخه بشه فورا خودشو به میدون شهر رسوند و از همون دور فریاد زد صبر کنین صبر کنین من قاتل دلغک پادشاه هستم حکیم بیگناهه ولیم توی جمعیت افتاد که Thank <laughs> you. وار به گوش پادشاه که رسید باز هم یه نفر دیگه پیدا شده که ادعا میکنه قاتل علیقلی دلغکه و پادشاه دستور داد خیاط باشی رو به نزدش بیارن خیاط باشی تعظیم کنن جلو رفت و گفت قربانت کردم ما تقصیری نداشتیم باور کنید راست میگم پادشاه با عصبانیت بر سر خیات باشی فریاد زد که تقصیری نداشتید تو تو تو تو دلقک بیچاره منو کشتی اون وقت میگی بی تقصیری، پس لابد لابد من خودم دلقکم رو کشتم و مقصر اصلی خودم هستم ها خیلیت باشی با ترس بتوندی گفت نه نه نه نه قربان من همچی جسارتی نکردم قبله ی به سلامت باد من و زنم دلغک شما رو به منزلمون دعوت کردیم و من از سر محبتی لغم گوشت و نون تو درش گذاشتم لغم بزرگ بود و توی گلوی دلغک شما گیر کرد و همین پادشاه با عصبانیت گفت همین <تصفيق> و دلغک بیچاره من مرد به همین راحتی و بعد توی چشمای خیات باشی زل زد و ادامه داد آه من رسم خوردم قاتل دلغکم رو بکشم و بعد دستور داد که حکیم یعقوب رو آزاد کنن و به جای اون خیات باشی رو به دار بکشن خیات باشه هم خودش رو برای به دار کشیدن آماده میکرد که در این موقع در ویشی از راه رسید و گفت ربله ی عالم به سلامت باد یه دقیقه صبر کنید شاید من بتونم نفس دلقک شما رو برگردونم شاید اون هنوز نمرده باشه پادشاه به خنده گفت اجب <تصفيق> پس تو مرده زنده میکنی ها رویش گفت به عذن خداوند شاید و جلو رفت و دست به تن علیقلی دلغک کشید و دید بله تنش هنوز گرمه درویش با خوشحالی گفت الحمدلله زنده است تنش شنوز گرمه پادشا با تعجب پرسید مه ممکنه کسی بعد از اینکه که دو روز از مرگش گذشته تنش گرم باشه درویش گفت اگه خدا بخواد بله میشه به بعد ادامه داد فوراً یه خلاب ماهیگیری بیارین درویش خلاب رو انداخت توی حلق دلغک دید هنوز لغمه توی گلوش مونده با زحمت زیاد سر رو به لغمه بند کرد و لغمه رو بیرون کشید تا لغمه از گلوگ علیقولی بیرون اومد سه دفعه اتسه کرد و پا شد و نشستد بادشاه از زنده بودن دلگه خیلی خوشحال بود و گاه گاه میخندید. اما یه دفعه اوقاتش تر شد و به علی گفت مرد ناحسابی چقدر تو برای من و این مردم گرفتاری درست کردی نزدیک بود امروز یه نفر آدم بیگناه رو به خاطر تو بخشم حالا من تو رو دار نمیزنم. اما اما امشب تا صبح باید بری بالا پشت بون تا از سرما ما بمیری همین که آفتاب غروب کرد فراش ها لباس های علی رو از تنش و اونو بردن بالای پشت بوم تا از سرما یخ بزنه علی از سرما مثل بید میلرزید یه دفعه دید گوشه پشت بوم یه بوم قلتون گذاشته شده تنابه بوم قلتون رو گرفت و شروع کرد به بوم قلتوندن هی hey, از این طرف هی hey, از اون طرف تا صبح بوم قلتون رو کشید چون بوم خرتون سنگین بود علی زود گرم شد و عرق کرد و سرما نخورد. صبح پادشاه اومد رو تخت پادشاهی نشست و به غلام ها دستور داد جسد علی رو از پشت بون بیارن. همین که غلام های پادشاهی اومدن روی پشت بون با تعجب دیدن که علی زنده و خیس عرق یه گوشه نشسته. علی رو زنده آوردن پایین و بردن پای تخت پادشاه. پادشاه با تعجب نگاهی به دلقکش انداخت و گفت: تو چجوری با اون سرمایه سخت دیشب زنده موندی ها علی قلی خنده ای کرد و گفت قربانت کردم من خودمو با آتش کوه دماوند گرم کردم پات خندهای خنده کرد و گفت که این تو حالا گیرم کوه دماوند آتش بشان کرد چطور گرماش تا اینجا به تو رسید علی قلی جواب داد قربانت کردم من دستم رو جلوی کوه دماوند گرفتم گرما خودش میومد پادشاه راه راه خندید و گفت آه آه خیلی خوب تو رو بخشیدم اما راستش رو بگو چطوری دیشب گرم شدی راست بگو علی قلی گفت هیچی غور بارد کردم اونقدر بوم غلطون رو چرخوندم تا علق کردم و گرم شدم پادشاه این بار اینقدر خندید که اشک از چشاش سرازی شد بعد دستور داد به علی برای این زحمت ها خلعت و انعامد چی که براتون نقل کردم افسانه ایرانی چه بر سر دوره پادشاه اومد بود که امیدوارم از شنیدن این افسانه شیرین ایرانی لذت برده باشین ایران زمین مهد فرهنگ و تمدن ارزشمندیه که بخشی از هویت ما را تشکیل میده و در این میون فرهنگ شفاهی که افسانه ها بخش مهمی از اون به شمار میدن جایگاه ویژه‌ای در این فرهنگ داره راز و رمز و نکات ابرتامیز نفت در افثانه ها رو باید با تعمل بیشتری جستجو کنیم و اونها رو حفظ کنیم افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالفور ویرال استار بهار گیویان اجرا محران دوستی صدابردار به دیگه کار تالیف کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر پترود